جالسه <سؤال> 18 قواعد فقه سیاسه الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الله علی و النبینا علی القاسم محمد. بعلو احیوات طاهرین المحسون الله في اراضی روح به الاله له فدا. ی که بعد از رفع خستگی در هستیم بحثی که از شهید بحث آیت الله سید رو داشین نقل میکردیم در بحث قیادت و تضاهم بین قیادت و اعلمیت اعلمی که غیر کف است و کفی که غیر اعلم فرض شود ایشان به یک انقلتی گفتن که تضاهم بین حکم ظاهری و واقعی است بعد فرمودن که بفهمید دقیقاً توی یه طبیعتاً حالا یه مفهوم آم میست در اینجا که ناظر به اینه که کسی سلاحیت های و توانمندی‌های های لازم رو برای رهبری داشته باشه در تاریخ فقه سیاسی شیعه و سنی همواره ویژگی برای ولی امرزک شده که ویژگی های جسمانی ویژگی های ذهنی سنی و همه موارد به ویژه در ویژگی توانمندی اداره مدیریت شجاعت و حال توابیری که میرسانه که فرد توانمند باشه ویژگی هایی که ناظر به توانمندی یک فرده در مجموع آیت الله هایری این مجموعه توانمندی ها رو به عنوان مفهوم کفیت آوردند مفهوم مشیریست به مجموعه سلاحیت ها و ویژگی‌هایی هایی که فرد رو در واقع در شرایط توانمندی برای اداره جامعه اسلامی قرار میده یعنی بحث ولیعن باید علمیت داشته باشه صحبت این است که حالا اعلم باشه یا غیر اعلم کفایت میکنه برفرض این که کسی اعلمیت رو شرط ندانه یه بحثی داریم خب کفایت اجتهاد بعد میگیم که خب باشه کفایت اجتهاد ولی ممکنه که احلم باشه بهتره بهتر نیست خب قطعا همه میگن بهتره ولی اگر شرط نکنیم بعد باز مطرح میشه اگه شرط بکنیم این بحث تزاهن بیشتر جای طرح داره چرا؟ چون که میگیم آقا واجب اعلم باشه یک حکمه وجوب داریم برای در واقع اداره جامعه شرطش اینه که مدیر ولی ام اعلم علما باشه خب بعد کفم باشه دیگه تنافی نیست هم اعلمه هم توانمندی های دیگه هم داره بلکه ممکن از دیگران بالاتر باشه اون روایت این احق ناس به هازل امرو خدمان شما بحث کردیم اعلم هم به امر الله اقواه هم علیه و اعلم هم به امر الله فی خب اقواه هم یه مفهوم مشابه برای این کفیته یعنی توانمند باشه مدیریت داشته باشه منفعل نشه همه اونا خلاصه اینجا یه مفهوم آمده اگر اعلمیت رو ما واجب بدانیم این برم یک وجوب این طرفی داشته باشیم خب داریم بحث میکنیم راه رفع تزاهم اولا نشان میخوان بفرمایند که کف مقدمه چون که یا این فرد باید بیا یا اون فرد اگر اعلم بود و کف بود خب دیگه تضاهم نیست اگر یک کسی دیگه اعلم باشه ولی کف نباشه توانمند برای اداره جامعه نباشه مثلا فرض بگیریم بعد از امام بعضی بزرگواران در مجلس خبرگان گفتن آیت الله گل پایگانی رحمت الله علیه فرض بگیریم ایشان اعلم هیچ که دیگه هم اعلم نباشه ولی کسی نمی گفت ایشان توانمندیه بر ای برای اداره جامعه اداره خودشان هم قائل نبودند خب یه صحبت بعضی هم کردن که ایشان ولی امر باشه ولی به مثلا مقام معذر رهبری نیابتی بدن یه اولگو بود خب یه اولگوی ولی اینکه شدنی نیست عملا این جامعه نمیشه اینجوری اداره کرد یا شعرائی اونم نمیشود لذا در مجلس بازنگری کردن فرض دیگه اینه که بگیم مثلا فرض بگیریم بر فرضی که دیگه اعلم باشه اما این این ترفیع فقیه توانمند مدیر و مدبر داشته باشیم آگاه به زمانه اینجا این رو میخوایم مقدم کنیم میخوایم ببینیم از جهتش فقهی با چه وجهی میتوانیم بگیم ایشون میفرمان اون حکم ظاهریه این حکم واقعی حکم واقعی مقدمه بعد انقلتی مطرح شد که فرمودن که آقا اگر گفته بشه که خود این تقلیدی کف هم حکم ظاهریه یعنی راهشان این بود که این حکم واقعیه ما این رو مقدم کنیم برون حکم ظاهری یه کسی بیا بگی نه آقا خود این هم حکم ظاهریست و تابع مسلحت سلوکیه چرا چگونه حکم ظاهریه؟ چون که اینجا مسئله خواستی رو ما لحاظ کردیم این شد مسلحت سلوکی برای زمین سازی برای رهبری این شد حکم ظاهری پس شما نگید این, مق... این واقعیه برای ظاهر مقدمه این در پاسخ میفرمایند که از اون بر شما نگاه کنید فتوا خودش چه حکمیه؟ حجیت فتوا چه حکمیه؟ ذاتن حجیت فتوا حکم ظاهریه و از دیگر احکام ظاهری در طبیعت عملش تفاوتی نداره. این هم مثل دیگر احکام ظاهری به خاطر حفظ احکام واقعی در مقام تضامم حفظی جعل شده. ولی ما میگیم که رعی علم از حجیت ساقت میشه و به غیر علم میرسیم میگیم این غیر علم کف اینجا مقدمه به خاطر چی؟ چون که گفتیم رعی علم حجیتش حکم ظاهریه اما اون وجوب خلاصه زمین سازی برای رهبری جامعه حکم واقعیه این به خاطر تضامت این همه حرف رو در سایر عباب هم ما داریم میزنیم حرف جدیدی نیست ما در جای دیگه هم نمیگیم فرنه او یقال پس خلاصی حرف ایشونی که بگه نه آقا شما که دارید میگید این حکم ظاهریه نه این حکم واقعیه و خود فتوا رو ببینید این که حکم ظاهریه واقعیتی داره که به خاطر حفظ خلاصه اون تزا... به خاطر تظاهوم حفظیه و به خاطر حفظ احکام واقعی جل شده خب اینجا اون حکم واقعی مقدم میشه چه اشکالی داره افواب دیگه ما همین کار رو میکنیم بعد مثال خواهد زن مثل تظاهوم سالات و ازال... خب و اینهویو قال پاسخ ایشان که اینه حجیت الفتفا فی ذات ها حکمون ظاهری لایشوزان باقی الاحکام ظاهری یا فی انها به حسب طبیعه الاولی این حکم ظاهری طبیعت اولش اینه که اینما تکون لعجل حفظ الاحکام الواقی لده تزاهم الاحفظی به خاطر حفظ احکام دیگه است در مقام تزاهم الاحفظی این جعل شده این حکم ظاهری این معتبر شده سقوطش چی به خاطر ویژگی خودشه ولا که سقوط رأی الاعلم عن و اون فتوا بود این حال بحث رأی الاعلم این که ما سراقه در واقع اون بزرگوار رفتش سراغ این که وجوب تقلید حکم ظاهری تقلید کف ایشان رفتن میگن که اون فتوا یه بحثه فتوا ظاهریه اما اینجا چرا ما میگیم اعلم رعیش ساقته از حجیت در این تضاهم ولیکن سقوط رعی الاحلم عنه الهجیت و وصول نوبه به تالی اله حجیت رعی غیر الاحلم این رعی داره میگه اهم از فتوه حکم این نماکانه شاید هم حالا فتوا هم بگن چون بعضی عبارت دیگرشن هم به فتوه هم میخورد دیگه این نماکانه نتیجت تضاهم بنا حازن حکم ظاهری حکم ظاهری چیه؟ حجیت رعی اعلمه و حکم الواقعی که چیه وجود به تحییت المناخ لقیادت القاعد و حازاله له نزیرون فیسایر العبا فا این تضاومه کما قد یتفق و بین حکم واقعی هن کما فسلات و الازاله کزاله که قد یتفق و بین حکم ظاهری هن او حکم واقعی هن و ظاهری مندون سرایت تضام الان حکم واقعی هن تزا... سرایت به حکم واقعی هم نمیکنه. بعدشان اون میفرمایند خب آبیم بیایم حالا بحث فتواهای مرتبط با موارد رهبری فوقش بخوایم بیایم جلوتر تفکیک کنیم بگیم یه سر فتاوا دخیل در احکام ولاییه بعضیش دخیل نیست مسائل شخصی مسائل عبادی خب بگیم که مردم برن از اعلم در اونها تقلید کنن در این هایی که در شکل گیری احکام بلایی دخیله نه دیگه قائل بشیم حاضا ولولم نقبل به تزام بین تقلید العلم و قیادت غیر العالم، تقلید العلم و قیادت پس یه تزام قبلی بین رحبری و تقلید بود به لحاظ الفتوه غیر المرتبطه به موارد قیادته اینو فرض کنم قبول نکنیم فقط نو نو نو که شو في قبول تزام بينو به لحاظ الفتا ولتي لها دخل في احكام الولايه اگر یه جور مربوط بشه این فتا و به احکام ولایت دیگه ما زیر بار اینجا دیگه نمیشه اینجا کلی کار به هم میخوره این نمی توانه بپذیره حیث و یصب عل القائد تنظیم و احکام القيادیه وفق فتاوا و من یقلد ناس اند من یختلفوا الناس بتقلید اگه فتاوای علما متفاوته علما بگیم برو شما تابع اون راهبری بخواد تابع فتاوای دیگه باشه خودشو احکام ولایتش رو با اون سازگار کنه اینجا هم عرض کنم در میان اهل سنت وجود داشته علمای قدیم شیعه مثلا در القواعد و الفواعد هم دارن یه جایی که اختلاف فتوه وجود داشته باشه اون حاکم است که میتوانه ترجیح بده بین این فتوا یا اون فتوه یعنی حرف جدیدی هم نیست حتی جایی که تفاوت داره در اختلاف هایی که مشکل فرینه حالا چه برسه به این مورد که این دخیل باشه در حکام ولاییش فهم یو غلدون فقه ها مختلفین یس اول جمع بین فتابان و اخزه ها جمعیان رقمت به این الاعتبار فی احكام الولا چجوری این ولی هم بخواه همین رو لحاظ کنه سازگاری ایجاد کنه فحتی لولم نقمن فی مثل هاز المورد به ما مذا من تقدیم رعی کفع علا اساس الاخصیت اللتی شرحناها تحتی فکرتو تقدیم رعی به لحاظ تزامن لذی عرفتم ما یه الگویی می بگیم آقا این رای کف مقدمه در اساس این اخصیت که کنه این اخس این مقدم میشه یه جوری به تعارض برمیگردانن تنافی دو دلیل مثلا میگن این اخس برای اون مقدم میشه اون یه الگو حالا این بعضی عباراتشون شاید صریح نبود مگر یه جایی که من حذف کرده بودم این سرنخ تو گذاشتم شاید اون اشاره فرمدن یا همون توضیح گفت یا تفاعات قبو میکنن اگر اون تقریه راه تقدیم رایه چون بحث من فقط تضاهم رو خواستم بیارم یه راه این بوده که ما بگیم آقا اینا عدلش اخسته اگر اونو قبول نکنید باید به لحاظت بکید که این مقدمه ولی لم یساب علیه تنظیم و احکامه وفق نفقت فتاول آخرین این تضاهم باعث تقدیمش میشه هر چند یه جاهایی هم احکام ویلایش بدهانه راحت با اونا سازگار پیدا کنه نه چون که تزاهمی مقدم میکنیم حتی در اون مواردی هم که خلاصه موافقت و سازگار فاع حکم احکام با فتاوا قابل راحت باشه لکن نهو لم يردائن الی ظالم که و... ولی ببینه که نه اون مورد نظرش نباشه و نظم موقف فتاوا هو به اعتبار اعتقاد به انها حق من فتاوا غیر زر... از اون منظر خیلی شید نباشه ولی چون ترجیح میده حقشه این چرا چون که در این تزاهم این مقدمه تو حق حقاقت تزاهم ایزن به نسبت للناس و تقدم آرول ولی به اعتبار اهمیت الولایه این تزاهم از منظر مردم هم قابل بررسیه یعنی یه موقع میگیم ولی هم چه چی رو بعد فتو مقدم کنه مردم هم همین تزاهم براشون حاصل خواهد شد خب این هم پس بحثی بود یک مثلاق برجسته از بحث تضاهم بین احکام ظاهری و احکام واقعی که راهگشای راهگشایی خوبی داره برای بحث اون رهبری و انتخاب تعیین رهبری که حالا ادله دیگه هم طبیعتاً میتونه دخیل باشه راههای دیگه هم در نظر گرفته بشه خب حالا جنابه الله سید کازم و حائری این طرق رو که می یه جنبندی و تحکیدی بر تفاوت این خروجی ها هم دارند که این رو خدمه شما عرض می‌کنیم یه توضیح اجمالی و بعد تطبیق بر عبارات می ما دو تا راه به راه تایی کردیم که اینا تفاوت داره اگر این راه دومی که ما رفتیم مطرح کنیم در تفسیر حالا این صفحه 95 از جلد 4 در تفسیر دلیل ولایت و بر اساس این تحلیل ما رفتیم سراغ تفکیک رهبری و تقلید بعد گفتیم که تقلید کف خلاصه از طریق راه دوم ما رفتیم. اینجا می‌فرمایند که نتایجش با راه دیگه تفاوت داره. بعد می‌فرمایند خود خب تفاوت رو بررسی کنیم. بعد می‌فرمایند که حالا ما بر اساس این راه ها آمدیم به راه اولی رو یک راه رو ترجیح دادیم. این دو تا راه رو مقایسه می‌کنن و بعد می‌گیم ما یکی رو اولین مورد دیه که کفیت برای رهبری اگر خلاصه تعق پیدا نکنه استعداد لازم رو ایجاد نکنه، طریق دوم، او رو معین نمیکنه. اگر نشه این بیاثر کار راه دومی که اشان رفتن میفرمایند که این گردن ما نمیذاره که در مقابل اعلم بگیم که اعلم غیر کف این تقلید گردنشه ولی اگر راه اول رفته بشه این ایجاد میشه این کف کفوان این کفوان لقیاده لولم یکون مستعد لتصدی لقیاده به اعیه سبب من الاسبا فتر طریق سانی لا یه نهول تقلید فی مقابل العلم این نیا خلاصه زمینه نباشه خودش مستعد نباشه بیا امکانش نشه اگه نیامد سر کار دیگه نه اینجا اون احکام تقلید وجوب تقلید دیگه نمیابرش در مقابل العلم دیگه نیامده دیگه فی مقابل العالم غیر الكوف بین من طریق العبل و نهول زمین ط... طریق دو... دو... نکته دوم دو اگر دو تا کف داشته باشیم یکیش عملا تصدی کرده یکیش هم اعلمه یک راه دوم دو میگه که آقا اون اولی مغل... تقلید خلاصه میتوانه مورد تقلید قرار بگیره در صورتی که اون دو تقلید نفر دوم دو زیانبار و به رهبری جامعه ضرر میزنه ولی این دوتا متفاوته لوفر از کفآن للقیادت احد همه هوا المتصدی عملا ول آخر هوال الاعلم فرطریک و ثانی یعنی الاول لتقلید میگی که اون که متصدی باید احتدار بشه دیگه اون فرض این بود تنوز متصدی نشد میگفتیم تقلید دیگه نیاز از اون تو نداره از اون تقلید بشه اما اگر متصدی باشه این دلیل این طریق دوم میگه که چی باید تصدی بکنه و تقلید دومی رو اگر بکنی که صرفا اعلمه ولی متصدی زی ضرر میزنه فر طریق ثانی عین الاولا للتقلید هی نمایکی یکونو تقلید ثانی که اون اعلمه صرفه مضررا به ممارسه اول قیادت ساحه برای اداره جامعه خلاصه زرم میزنه اما اگر راه اول رو بدیم نه این نتیجه رو نداره بین هموم یا بین نموم از طریق الاول لا یفید بذاله فلاو اختصن از طریق الاول کان مختزا نظام ترجیل بالعلمیه و تقلید و ثانی. اون روش به میگه که برو سراغ چی ای ای اون طریق اول رو اگر اتخاص کنیم میگه برو تقلید اعلم بکن نکته سوم. راه دوم خیلی دقتی که اون در طریق اول هست نداره یا اون محدودیت آفرینی رو نداره فرماید که خیلی جا تفاوت هست بین افراد و بعضی از مردم از افر از غیر کوف تقلید میکنن بیشترشون هم خلاصه تفاوت بین رهبری و تقلید قائل نیستن که این مبارد احکام ولایی و غیر ولایی رو بشناسن این هم طریقه ثانی لیس که طریقه اول طریقه اول حدیه اما طریقه دوفنقلی این ریزکاروی توش نداره از لیس تقلید و غیر الکفت به ای مستوامن من مزای من لقیادت الکفت چرا؟ چونگه بر این اساس اگر از عالم غیر کف در هر سطحی که باشه کفیتش این متضامه و رهبری نداره بر این اساس بنابراین فلاوکان هونه که قلت و من الناسیو غلدون غیر الکف و کان غالبت افراد این یومیزون بین منصب القیادت و منصب تقلید فلفرفا غیر المؤثر علی احکام الولای للولیم و رقم تقلید ام لغیر الکوف یخزه اون لقیاده تلکوف مثلا فلا تزا بین تقلید لقیاده کما هم واضح یه تی از مردم تفکیه قائل نیستن اما یه تی زیادی اگر اینگونه باشه که تفکیه قائل بشن نتیجه اینه که ولو اینکه مقلد دیگری باشند اینها در امور ولایی تابعه ولی ام خواهند بود و بنابراین ولی که از دیگری تقلید میکنن مشکلی ایجاد نخواهد شد چنای که میفهمند اگر آگاهی سازی خوبی در جامعه رخ بده که آقا تقلید و رهبری تفاوت داره در جایی که ربطی به امور ولایی نداره اینجا این تظام عملا از ب میره دیگه. و نیازی نداریم ما از اون راه دوم بریم که خلاصه بگیم حتما باید. از ولی امر تقلید کرد البته الان اون طریقه اولاً میشون این قول تو میکنن ولی در مجموع دیدگاهی دارن کما ان نهو لو تمت توییهت الام این پاراگراف رو برم تا آخر ببخشید کما ان نهو لو تمت چون بس این قسمت تموم شد کما ان نهو لو تمت توییهت الام على تفکیک بین القياده و تقلید توییه یعنی آگاهی سازی وای یعنی آگاهی ببینید اگر حویه ایجاد بشه برای مردم آشناسازی و بصیرت آفرینی بشه و آگاهی سازی بشه برای مردم نسبت به چی؟ علب تفکیه که بین القیادت و تقلید بین امور رهبری و تقلید فی غیر الامور دخیل و احکام الولاییم یه سری فتح ها باست به احکام الولایید نداره ما در اونها به مردم بگیم اشکال نداره اگر بخواید از اون تقلید کنید در این صورت تظام چیه مشکل رفت میشه به ارتف... به صورتی که تضام رفت بشه به حس ارتفعت تضام عملا بین الامرن لم یکم موردن للاستفاده به ن طریق ثانی اگر ما این آقای سازی رو بکنیم دیگه نیاز به اون راه دوم نداریم هر چند اون راه دوم اولا برای یه مقدار مشکل داره چون که حالا نکته سنجی دارن که معنن طریق اول اندی مشکلون لعدم وضوح ترجیح الاحتمال الاول من الاحتمالین اللذین ابدانه و ما دو تا احتمالی که ترشان کردیم و اظهارشان کردیم فلقسم ثانی من عدلت تقریب ولا اقل منال اجمال حالا بعضی عبارات دیگه مقداری چون که تابع اون چارچوب کلی بحثشون بود یه جایی وسیگی داره که اون عبارات قبل و بعد روشن بشه در بحث خودشون بله در خدم خب هستم پس اجمالا ایشان دو طریق رفتن خواستن تفکیک کنن بین این که خلاصه تز... اون فتاوای مرتبط و فتاوای غیر مرتبط با احکام ولایی. اگر ما بخوایم راه اول که بحث فتاوای مرتبط تر رو بریم با یکی هم فتاوای غیر مرتبط راه دوم فتاوای غیر مرتبط بود ما می توانیم زمین سازی کنیم بگیم اقا اینا امکان رفع تضاهمه هست در مجبول پس سه نکتهشان فرمودر این نکته آخر روی این قسمتش رفت که آقا آقای سازی میشه بکنیم بل اینکه خلاصه اونجا مرضبندی اون خلاصه محدودیت برای ما درست نمیکنه اما دو فرض قبلا رفت سراغ این مقوله که اگر کسی حالا بلفل که خودش کف هست ولی تصدی بکنه یا نکنه اگه تصدی نکنه اون فتاوای مرتبط و به امور ولای دیگه جا نداره مطرح بشه و لذا دیگه اصلا جای تقلیدش نیست چون که ولایت رو اهدا نشد که بگیم فتاوای مرتبط خلاصه محوریت داره و از فتاوای مرتبط گردن ما میذاره که مرتبط با احکام ولایی دیگه اصلا ولی نشود که بگیم فتاواش مرتبط با ولایت مثل دیگران شد اما اگر بگیم که نه متصدی شد اون نکته دوم اون هم یه تفاوتی داره اونجا میگه که خلاصه اون تقلید دوم ممکنه ضرر بزنه حالا که ولی اگر به اون راه اول ما فتواه غیر مرتبطم بخواییم بشیم اونجا دیگه خلاصه باید بریم حتما اعم از اینه که فتوا مرتبط باشه یا غیر مرتبط همین که ما استدلال کردیم اون راه رو رفتیم گفتیم آقا همه فتوا رو باید تقلید کنیم چه مرتبط چه غیر مرتبط اونجا دیگه همین که تصدی کرد اصلا باید از اون تقلید کرد چه مرتبط باشه چه غیر مرتبط پس این دو تحلیق ما این بود که محوریت رو بدیم به، یعنی حددکسری و حددقلیش بکنیم اولین تحلیق حددکسری بود که گفتیم که همه احکام چه مرتبط چه غیر مرتبط راه دوم آمدیم کوتاه آمدیم گفتیم که احکام مرتبط با احکام ولایی رو شما بذارید تفاوتشون این شد که اولی خلاصه اگر این بندی خود تصدی نمیکرد به هر دلیل هیچ چی دیگه اون طریق دوم می که نه دیگه تقلید ازش جایز این نیست ولی اون راه اول می گفت نه برو را اگر تصدی کرد اون طریق حد اکثری اول خب گردنش گذاشته ولی طریق دوم یه مقداری خلاصه تفاوت ایجاد میکنه خب در خط پنجم دارید داشتید بفرمایید یه دقیقه مونده استاد, استاد خصا قطع نشده خب. بفرمایید استاد این خب تو مسائل ولای رجوع کف در واقع رجوع متخصصه دیگه حکم عقله بعد تو مسائل فقهی هم که رجوع اعلم اعلمیته تا موقع میشه گفت اصلا تعارض نیست یعنی تا احتمالاً خیلی بویت یه حس عقلی شده هیچ خاصی الان اصلا اصلا این با تخصص کار نداره ها ببین الان هر دو توانمندند یه سی داریم هر دو عالمن الان بین فقیه و غیر فقیه نیست. اون کفی هم که بود اونم شرد فقاهت داره ایشان الان با نمیخوا که متخصص مثلا میگه علوم سیاسی باشه یکی فقیه باشه نه دوتا فقیه هن که خلاصه یکیش اعلمه ولی مثل اطلا گلپایگانی رحمت الله یه چند سال بیشتر نداریم اون بران فقیه ها ملتمس دعا حال بین این دوتا تضاهمه غیر فقیه مطرح نیست ملتمس دعا الحمدالله رب العالمین